بیان حسد وزیر آن وزیرک از حسد بودش نژاد تا به باطل گوش و بینی باد داد بر امید آنکه از نیشه حسد زهر او در جان مسکینان رسد هر کسی کو از حسد بینی کند خیشتن بی گوش و بی بینی کند بینیان باشد که او بویی برد بوی او را جانب به کویی برد هر که بویش نیست بیبینی بود بوی آن بوی است کان دینی بود چونکه که بویی برد و شکران را نکرد کفر نعمت آمد و بینیش خرد شوخ کن مر شاکران را بنده باش پیش ایشان مردش و پاینده باش چون وزیر از رهزنی مای مساز خلق را تو برمیاور از نماز ناصح دین گشته آن کافر وزیر کرده او از مکر در لوزینه سیر